اینجا داستان متولد شدن سهراب و زاده شدن او از مادری که بنده از روی شاهنامه استاد توس او رو میخونه چون نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکی کودک آمد چو تابند ماه تو گفتی گوه پیلتن رستم اگر سام شیر است و گر نگرم است اگر به معنی یاست چنان که بارها گفتیم چو خندان شد و چهره شاداب کرد بر نام تهمینه سهراب کرد چو یک ماه شد همچون یک سال بود برش چون بر رستم زال بود چو سه سال شد ساز مردان گرفت به پنجم دل تیر و چوگان گرفت چو ده سال شد زانزمین کس نبود که یاراست است با او نبردازمون یارستن یعنی جرعت کردن بره مادر آمد بپرسید از اوی بدو گفت گستاخ با من بگوی که من چون ز همشیرگان برترم همی باسمان یاد سرم ز تخم کییم و از کدامین گوهر چ گویم چو پرسند نام پدر گر این پرسش از من بماند نهان نمانم ترا زنده اندر جهان یکی دو نکته هست در اینجا که باید توضیح بدم اولیش این است که تولد و رشد سهراب مثل رشد همه پهلوانان و قهرمانان حماسی در همه جای دنیا فوق العاده و استثنایی است میگوید که در یک ماهگی مثل یک ساله بود سه سالش وقتی شد ساز مردان گرفت در سال پنجم رفت دنبال تیراندازی و چوبان بازی و چون ده ساله شد دیگه کسی تاب مقامت با او نداشت و اون وقت میاد پیش مادر و از او میپرسد که من از نسل کییم و اگر تو به من سریح نگی من تو رو زنده نمیگذرم اما یک کلمه هست اینجا همشیره و همشیرگان که مراد کودکانی است که همسن و همسال او هستن ما الان در زبان فارسی رایج مردم همشیره رو برای خواهر به کار میبریم و شاید این بر این اساسه که خیال میکنیم که اون هی که آخر همشیره هست علامت تحنیسه بنابراین همشیره یعنی زنی که همشیر باشه و آدم یعنی خواهر آدم باشه ولی این درست نیست اولا به این دلیل که در زبان فارسی اصلا مذکر و معنس وجود نداره تا اینکه تای تعنیس یا هی تعنیس وجود داشته باشه پس هی آخر همشیره هی علامت معنس نیست چون نیست میشه همشیره رو برای مرد بکار برد یا برای زن اگر بپرسید پس این هه علامت چیست ارز میکنم که این های نسبت یعنی نسبت همشیری دارد با دیگری بنابراین همشیره به معنی برادر و به معنی خواهر به کار میره و همینجا بینیم که سهراب معنی دوستان و کودکانی که همسنون سال بودن این رو به کار بودن. این مطلبی بود که من میخواستم عرض کنم عین همین است کلمه دیگری که کمینه است و باز هم دیدم که معمولاً این کمینه رو برای زنان به کار میبرند و مرد نمیگه کمینه و حال اینکه اینم همونطوره اینه پسوند نسبت و کمینه یعنی کمین برای مرد میتونه باشه برای زن هم میتونه باشه و هیچ اشکالی نداره بدو گفت مادر که بشنو سخون بدین چاتمان باش و تندی مکن تو پور گب پیلتن رستمی ز دستان سامی و از نیرمی ازیرا سرت زاسمان برتر است که تخم تو زن نام برگوهر است جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید شسام نریمان بگیتی که بود سرش را نیارست گردون بسود یکی نامه از رستم جنگ جوی بیاورد و بنمود هنهان به دوی سه یاغوت رخشان و سه زر که از ایران فرستاده بودش پدر به دو گفت کفراسیاب این سخن نباید که دانت ز سرتا ببون پدر گر کنون زین نشان شدستی سرفراز گردن کشان چو دانت بخانت. نزدیک خیش تل مادریت گردد است درد ریچ اینجا میگوید که بعد از اینکه نژادشو میگه و میگه تو از نسل رستم هستی و خیلی هم سرفرازی از این بابت و نامه رستم و مهره زر و یاقوت رخشانی که داده بوده میاره به اونشون اشو میده میگه که افراسیاب نباید تو بشناسه و از ماجرا هم نباید اطلاعی داشته باشه برای اینکه تو رو به نزدیک خودش میخونه و من دلم از درد ریش میشه و سهراب جوابی میده که این جواب خیلی مورد بحثه و بنده حالا جواب سهراب رو میخونم و بعد اون بحث رو هم عرض میکنم چون این گفت سهراب در جهان کسی این سخن را ندارد نهان بزرگان جنگاور از باستان ز رستم زنندین زمان داستان نبرده نژادی که چونین بود نهان کردن از من چه این بود کنون من ز ترکان جنگآوران فراز آورم لشکری بیکران برانگیزم از گاه کاووس را از ایران ببرم به رستم دهم تاج و تخت و کلا نشانمش برگاه کاهوز شاه از ایران به توران شوم جنگ جوی عباشاه یعنی افراسیاب روی اندر آرم به روی بگیرم سر تخت افراسیاب سر نیزه بگذارم از آفتاب چو رستم پدر باشد شد و من پسر نباید به بگیتی یکی تاج بر چو روشن بود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر فرازت این گفته های سهراب کاملا پیداست که از روی جوانی و خامی و ناپختگی است اولا که افراسیاب و کیکاووس اونجا بیکار ننشستند که سهراب بیاد بلشگر تحقیه کنه برداره بیاره اینا رو همه رو از بین ببره این یکی دوم این که اگر رستم جهان پهلوانیست که بزرگان جنگ آور از باستان بر او داستان میزنند و با اون قدرت و قوتی که سهراب در او سراغ میکنه اگر قرار بود که تخت سلطنت رو بگیره خب خودش اول میگرفت دیگه چه احتیاجی بود که سهراب بیاید و کمک بکنه و کاووس رو از تخت برانه و تاج و تخت و کلاه رو بر بسپاره بنابراین این اینا خیالات ناشی از جوانی و بی‌تجربگی است این به جای خود اما نکته بسیار مهمتری که در اینجا هست این است که گروهی از مفسران گفتند که همین قصد تجافز سهراب به حریم پادشاهی بوده است که باعث از بین رفتن او شد من توضیح مختصری بیشتری در این باب بدم برای اینکه روشن بشه بارها گفتم در این گفتارها که شاه در ایران بر طبق عقیده کسانی که در دوران پیش از اسلام می‌زیستند، باخیه ایرانیان و باستان شاه باید فرای ایزدی داشته باشه این فرای ایزدی رو من الان وارد بحثش نمیشم چون بحثش طولانی است اما به طور کلی یعنی باید معیت به تایید الهی باش. گویا برای سه کار فر فر یعنی تایید الهی لازم بوده یکی پادشاهی یکی پیغمبری است و یکی پهلوانی هر سه این موارد باید کسی که میخواد سمت پهلوان رو پیدا بکنه یا کسی که میخواد به پادشاهی به تخت پادشاهی بنشینه یا پیغمبر بشه این باید مورد تعیید ذات حق باشه و به او فره پادشاهی یا فر پهلوانی رو ارزانی بدارن و این گوی هیچ فصل مشخص جداغانهی در باب این فر بحث نکرده و گفتگو نکرده که ما بگیم که در فلانجا چنین مطلبی بحث شده اما از خلال مطالبی که در جاهای مختلف آمده این نتیجه به دست ما میرسه مثلا جمشید رو در شاهنامه میگوید که وقتی که دروغ گفت هم در شاهنامه و هم در های اوستا فر ایزدی از او گسسته شد و سه بار فر به صورت مرغی از او جدا شد. یک بار فر به فریدون رسید، یک بار فر به کیرشاست رسید و یک بار دیگر فر به ایزد رسید. و بعد از اینکه فر ایزدی از جمشید گسسته شد، دیگه توانایی پادشاهی نداشت و بر او شورش کردند. و او رو از پادشاهی خلق کردن و باید هم زهاک آمد او رو کشت در جاهای دیگر هست که می آیند در مواقعی به خصوص که مملکت آشفته و عرض کنم که پر از شورش و ناراحتی و ناامنی بوده و تخت سلطنت هم بی متصدی مونده بوده میان و پیشنهاد می هم به و هم به سام چت درستم که بیاد و این سلطنت رو به افته بگیر و اینا به شدت از این مطلب امتناع میکنن اینا به شدت امتناع میکنن از این مطلب و میگویند که نه اونا باید کار خودشون رو بکنن و کسی که صلاحیت پادشاهی نداره و برای پادشاهی نیست نباید بیاد و دواف طلب پادشاهی میشه الان بنده همین رو یه قسمتی رو یادداشت کردم از پیشنهاد پادشاهی که به سام میشه در دوره پادشاهی نوزر چون نوزر هفت سال بیشتر که سلطنت نمیکنه ولی از همون اول شروع میکنه به بیدادگری و مردم سر به شورش بر برمیدارن و نوزر به سام یه نامه مینویسه که بیاد و مردم رو یعنی شاه رو یاری بکنه و مردم رو شورش رو چیز بکنه شورش رو آرام بکنه میاد سام میاد اون بحشا رو نمیخونم میفرماید که چون نزدیک ایران کشیدان سپاه یعنی سام پسیره شدندش بزرگان به راه چون ایرانیان آگهی یافتند سوی پهلوان تیز بشتافتند پیاده همین پیش سام دلیر برفتند و گفتند هر گونه دیر ز بیدادی نوزر تاجور که برخیره گم کرد راه پدر جهان گشت ویران ز کردار اوی قنوده شدان بخت بیدار او نگردد همی بر ره بخردی از او دور شد فره ایزدی چه باشد اگر سام یل پهلبان نشیند بر این تخت روشن روان جهان گردت آباد با داد اوی مرور است ایران و بنیاد اوی همه بنده باشیم و فرمان کنیم روان را به مهرش گروگان کنیم به دیشان چنین گفت سام سوار که این کی پسندت زمن کردگار که چون نوزری از نژاد کیان به تخت کیبر کمر برمیان به شاهی مرا تاج باید بسود محال است و این کس نیارد شنود خود این گفت یارد کسند در جهان چنین زهرت دارد کسند در نهان نبودی جز از اگر دختری از منوچهر شاه بر این تخت زر بر شدی با کلاه نبودی جز از خاک بالین من به شاد گشته بین من دلشگر راه پدر گشت باز بر این بر نیامد زمانی دراز هنوز آهنی نیست زنگار خرد که رخشنده دشخار شایدش کرد من اون ایزدی فر باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم شما این گذشته پشیمان شوید به نوی ز سر باز پیمان شدید میگوید که خیلی وقت نیست که این ویدادگریش شروع کرده عادت نکرده به این کار و من میرم و او رو نصیحت میکنم و امیدوارم که او رو برگردونم به روش درستش و شما هم از این پیشنهادی که کردید و از این فکری که کردید توبه بکنید بار دیگر همین مطلب در داستان بهرام چوبین چون بهرام چوبین داستانش در اواخر شاهنامه است البته بهرام چوبین سردار خسر و پرویز بوده میاد و یه پیروزی نمایانی پیدا میکنه نسبت به ساوشاه پادشاه تورگان و بعد جریاناتی اتفاق میافته هرمز پدر خسر او رو خار میکنه و بهرام سر به شورش برمیداره و خلاصه گرفتاری بالاخره تصمیم میگیره که خودش پادشاه بشی و در این روزگار خواهری داشته بهرام به نام گردیه که یکی از زنهای بسیار شاخص داستانهای شاهنامه است این میاد پیش بهرام و بهرام که با او رای میزنه مطالبی میگه از جمله همین است که دوباره اونجا گردیه میگوید میگوید که به سام پیشنهاد کردند با اینکه سام بسیار شایسته ترسو بود هرگز این کارو نکرد بنده الان باز چند بیت از اون صحنه را میخونم می که جهاندار تا این جهان آفرید زمین کرد و هم آسمان آفرید نگد ندیدند هرگز سواری چو سام نزد پیش او شیر در رنده گام چون نوزر شد از بخت بیدادگر به در آور رای پدر همه مهتران سام را خواستند همان تخت پیروزه آراستند بران مهتران گفت هرگز مباد که جان سپهوت کند تاج یاد که خاک منوچه گاه من است سر تخت نوزر کلاه من است بدان گفتم این ای برادر خواهر پهرام چوبینه به او میگه بدان گفتم ای برادر که تخت نیابد مگر مرد پیروزبخت مرد پیروزبخت اینجا یعنی همون کسی که فره ایزدی داشته باشی و از جای دیگری در گفتار مفصلی باز گردیه همین مطلب رو میگوید میگوید بسی بود که بیکار بود تخت شاه نکردند در او هیچ کهتر نگاه جهان را به مردی نگه داشتند یکی چشم بر تخت نگماشتند هران کس که دانا بود و پاک مغز سهرگونه اندیشه ای راست راند نغز بداند که شاهی به هز بندگیست همان سرفرازی نافکندگی است نبودند میگه با این که که شاهی از بندگی بهتره ولی نبودند یازان به تخت کیان همه بندگی را کمر برمیان ببستند و زیشان بهی خواستند همه دل به فرمان شاه را آستند نبیگان زیبای افسر بود سزای بزرگی به گوهر بود ز کاووس شاهند آیم یمنخوس کجا راه یزدان همی باز جست بعد میگه که چه گفت و چه گفت و کاووس وقتی رفت و به آسمان رفت و آمدن به رستم پیشنهاد کردن چه گفتند با رستم ایرانیان که هستید تو زیبای تخت کیان یکی بانگ بر بران کس که گفت که با دخمه تنگ باشید جفت که با شاه باشد کجا پهلوان نشستند کایین و روشن روان مرا تخت زر باید و بسته شاه مبادین گمان و مبادین کلاه که از این گزین کرد از ایرانیان از گزین کرد گزین کرد از ایران تا 2000 جهانگیر و پرگستان ورسوار از بند کاووس را همان گیب و گودرز و همتوس را. بعد میگه که تو حالا با یه پیروزی که پیدا کردی میخواید جای شهان رو بگیری و یقین داشته باش که این کار به انجام نمیرسه و تو موفق نمیشی و کشته خواهی شد و همینطور هم شد و با اینکه بهرام چوبین داوطلب پادشاهی بود هرگز به مرادش نرسید. این مسائل رو وقتی که در نظر داشتن کسانی که میخواستن در مورد داستان رستم و سهراب تفسیر کنند گفتن که این فکر تجاوزی که صهراب نسبت به مقام پادشاهی و کسانی که دارای فره ایزدی هستند به ذهنش خطور داده بود همین باعث حلاکت و عزمی رفتن رفتنش شده ارض کردم و هر حال اینا تفسیر است که گفته میشه و بنده هم اینجا یاد میکنم از این نظر که یه مقداری به مطالبی که در این زمینه گفته شده آگاه بشیم و الا همه اینها بعد از این بوده که فردوسی داستان و سروده بعد میان این رو براش پیدا. و هر حال سهراب میگه که من این کارا رو میکنم زهر سو سپه شد بر اون انجمن که هم با بود و هم تیغ زن اون وقت خبر به افراسیاب میرسه خبر شد به نزدیک افراسیاب که افکن سهراب کشتی برا هنوز از دهن بود شیر آگه همی همین رای شمشیر و تیر آگه زمین را به خنجر به همی کنون رزم کاووس جوگت همی سپاه انجمن شد بر او بر بسی نیاید همی یادش از هر کسی سخون بین درازی بین درازی یعنی به این درازی سخون بین درازی نباید کشید همی برتر از گوهر آمد پدید چون افراسی ها شنود سخان شو خندید و شادی نمود لشکر گزید و دلاور سران. کسی کو گراه به گرز گران سپه بد چون هومان و چون بارمان که در جنگ شیران نجستی زمان ده و دو هزار از دلیران گرد گزید سپاهی به دیشان سپرد چون این گفت کین چاره چاره اینجا در شاهنامه در بسیاری موارد و هم در اینجا به معنی مکروهیله است چون این گفت که این چاره اندر جهان بسازید و دارید اندر نهان پسر را نباید که داند پدر دانستن به معنی شناختن است همینجور که الان هم در زبان انگلیسی هم دانستن معنی شناختن به کار میره در فارسی هم به کار میرفته میگه پسر پدر پدر پدر پسرشون نباید بشناسه که بندت بدان مهر جان و گوهر میگه اینا دوتا نباید هم دیگر بشناسن چون در اندر آرند هر دو به روی تهمتن باید میگمان جنگ جوی مگر کان دل سال خرد شود کشته بر دست این شیر چوب چون بیرستم ایران به چنگ آقاریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم. وزان پس بسازیم سهراب را ببندیم یک شب برو خواب را این نقشه افراسی ها بوده دو تا از بهترین سردارانشو میفرسه فقط برای اینکه نگذارن که سهراب پدرش بشناسه و اینا میرن برفتن بیدار دو پهلوان به نزدیک سهراب روشن روان به پیشندرون هدیه شهریار ده هست و دهستر ده به زین و به بار ز پیروزه تخت و ز بیجاده تاج بیجاده یاغوت زرده ز پیروزه تخت و ز بیجاده تاج سر تاج زر پایه تخت آج یکی نامه با لابه و دلپسند نوشته به نزدیک آن ارجمند که گر تخت ایران به چنگ آوری زمانه برا از داوری یکی از معانی داوری جنگ و ستیزه خاجحافظ میگه یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری جنگ و داوری یه معنی داره اینجا میگه که گر تخت ایران به چنگ آوری زمانه بر آساید از داوری یعنی دنیا از جنگ آسوده میشه از این مرز تا آن بسی راه نیست سمنگان و ایران و توران یکیست فرستمت چندان که خواهی سپاه تو بر تخت بنشین و برنه کلا به توران چه هومان و چون بارمان دلیر و سپه بد نبود این زمان فرستادم اینک به مهمان تو که باشند هر دو به فرمان تو اگر جنگ جویی تو جنگ آورند جهان بر بدندیش تنگ آورند بنابراین سپاهی افراسیاب دوتا سردار میفرسته احیانا سپاهی هم میفرسته واسوئلا در اختیارش میگذاره و دیگه سهراب آماده میشه برای اینکه بیاد به طرف ایران و اولین جایی که در ایران در مرز ایران بوده دژی بوده است به نام دژ سپید. چون این نامه اون خلعت شهریار به بردم باساس چندین سوار جهانجوی چون نامه او بخوند از آن جا لشکر براند کسی را نبود پای با او به جنگ. اگر شیر پیش آمدش پلند دزی بود کشخان دندی سفید بدان دز بود ایرانیان را امید نگهبان دز رزم دیده حجیر که باز زور دل بود و بادار گیر این حجیر پسر گودرزه چو سهراب نزدیکی دز رسید حجیر دلاور مرور را بدید نشست از بر باد پایی چو گرد زد دز رفت پویان به دشت نبرد مرزدار بود که سرحد و محافظت میکرد وقتی که دیدی سرداری با استپاهی آمده آمد بیرون که ببینه چه خبرید چو سهراب جنگاور او را بدید برا شفت و شمشیر کین برکشید زلشکر برون تاخت برسان شیر به پیش حجیر اندر آمد دلیر چونین گفت با رزم دیده حجیر که تنها به جنگ آمدی خیر خیر خیر خیر یعنی بیهوده چه مردی و نژاد تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست مادرت باید به مرگت گریه بکنه حجیرش چونین داد پاسخ که بس به ترکی نباید مرا یار کست در برابر یکی از ترکان من دیگه معاون و یار و کمک نمیخوام حجیر دلاور سپهبد بد منم همکنون سرت رازتن برکنم فرستم به نزدیک شاه جهان تنت را کند کرکستن در نهام بخندید صحراب از این گفتگوی به آورد او تیز به نهات آورد یعنی نبرد سنان نیزه بر نیزه بر ساختند که از یکدیگر باز نشناختند یکی نیزه زد بر میانش خجیر نیامد سنان جایگیر. سنان باز پس کرد سهراب شیر بن نیزه زد بر میان دلیر ززین بر گرفتش به کردار باد نیامد همیزو به دلبرشت یاد اسبندر آمد نشست از برش همی خواست از تن بریدن سرش بپیشید و برگشت بر دست راست غمی شد به سهراب زنهار خواست رها کرد از او چنگ و زنهار داد چو خوشنود شد پند بسیار داد دو دستش ببستان یل جنگجوی به نزدیک هومان فرستاد بود اینجا در این جنگ نیزه حجیر با سر نیزه حمله میکنه و ظاهراً سر نیزه رو بند میکردن به کمرگاه پهلوان و پعالیتهای میکردن ولی سنان نیزه هجیر به کار نمیاد بر کمر سهراب زورش هم نمیرسیده ولی سهراب که قصد کشتن هجیر رو نداشته سر نیزه رو به سوی او دراز نمیکنه کنه بن نیزه حجیر رو میزنه بعد هم میاد میگیره او رو و میزنه زمین و میخواد سرش رو ببره که هجیر زنهار میخواد و سهراب هم به او زنهار میده و دست او رو میبنده و میفرسته برای لشکر توران پیش دو سرداری که افراسیاب فرستاده بود از اون طرف در دز وقتی که میشنون که حجیر حجیر دستگیر شده و فرستادن بهشون بر میخوریم بنده مطلب رو باز از شاهنامه می‌خونم. میفرمد که به دزدرد چه آگه شدند از حجیر که او را گرفتند و بردند دستیر خروش آمد و ناله مرد و زن که کم شد حجیرند در آن انجمن چه آگاه شد دختر گجده هم که سالار آن انجمن گشت کم زنی بود برسان گردی سوار همیشه به جنگندرون نامدار کجا نام او بود گردآفرید کجا معنی کیس کجا نام او بود گردآفرید که چون او نیامد ز ما در پدید چنان ننگش آمد ز کار حجیر که شد لال برگشت به کردار قیر یعنی رنگش سیاه شد به پوشید سواران جنگ ندیدند در آن کار جای درنگ نهان کرد گیسو به زیر زره بزد بر سر ترگ رومی گره فرود آمد از دز به کردار شیر کمر بر میان بادپایی به زیر به پیش سپاه اندر آمد چو گرد چو رعد خروشان یکی ویله کرد یعنی صدا کرد فریاد کرد که گردان کدامند و جنگ آوران دلیران و رزماز مودسران. سران چو سهراب شیر و جنورا بدید به خندید لب را به دندان گزید. بلا فاصله وقت که دید سهراب به طرف اومیاد شروع کرد به تیرباران به سهراب بر تیرباران گره چپ و راست جنگ سواران گره نگه کرد سهراب و آمد ننگ براشفت و تیزندر آمد به جنگ چو در آمد بدان جنگ جوی سپر برسه آورد و به نهاد آمد جلو برای اینکه از تیر دیگه یعنی از صدمه تیر در امان بمونه و بیا جنگ رویاروی و نزدیک بکنه چو سهراب را دید گرد آفرید که بر سان آتش همین بردمید کمان را به زهبر به بازو فکند سمندش برآمد آمد به عبر بلند سر نیزه را سوی سهراب کرد انان انا و سنان را پرستاب کرد برا شفت صحراب و شد چون پلنگ کجا حمله آورد به هنگام جنگ کجا بازمانیه کس؟ انان اینان برگرایید و برگاشت اسب عصب. یعنی اسبشو برگردوند بی آمد به کردار آزرگوش اسب بزد بر کمربند بند فرید سره بر برش یک به یک درید این همون است که در مورد نیزه، در مورد هوجیر گفتیم او هم میخواست با سهراب یه چنین کاری بکنه که زره او رو پاره کنه ولی او نتوانست ولی اینجا سهراب در مورد گردآفرید این کارو میکنه ز زین برگرفتش به کردار گوی چو چوگان به زخمندر آید بدوی میگه مثل گویی که چوگان بیاد بزنه ببرش همونطور او رو از زین برداشتش. بر برزین بپیچید گردآفرید یکی تیغ تیز از میان برکشید کشید بزد نیزه او به دونیم کرد سهراب میخواست با نیزه گردآفرید رو بلند کنه ولی گردآفرید شمشیر رو کشید و زد نیزه او رو دونیم کرد نشست از بر اسب و برخواست گرد. به آورد با او بسنده نبود که گردآفرید حس میکنه در جنگ آورد به معنی جنگه میگفت فکر میکنه که در جنگ با او قدرت نداره که رویا رویی بکنه بسنده منی است. و آورد با او بسنده نبود بپیشگید از او روی و برگاشت زود عصبشو زود برگردوند سپهبت اینان انان ها را سپرد به خشم از هوا روشنایی ببرد به سرعت تعقیب کرد که گردآفرید رو بگیره گردآفرید اینجا یه حیله زنانه به کار میبره چو آمد خروشان به تنگندرش وقتی نزدیک شد بپیچید و برداشت خود از سرش گردآفرید خود از سرش برمیداره رها شد از بند زره موی او درفشان چو خورشید شد روی او بدانه سهراب کو دختر است سر و موی او از در افسر است شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چون این دختر آید به آوردگاه سواران جنگی به روز نبرد همانا به عبر اندر آرند گرد میگه وقتی که دخترشون اینطوری باشه حتما سوارانشون دیگه گرد رو گرد میدان جنگ رو به عبر میرسونند زفتراک بگشاد پیچان کمند بیانداخت و آمد میانش ببند کماند کشید و او رو به بند آورد بدو گفت که از من رهایی مجوز خوب فکر رها شدن و در رفتن رو از ذهنت خارج کن بدو گفت که از من رهایی مجو چرا جنگ جستی تو ای ماه روی نیامد بدانم به نیامت تو گور ز چنگم رهایی نیابی مشو میگه که هیچ ناراحت نکن خودتو برای که از چنگ من رها نمیشی بدانست کابیخت گردافرید مران را جز از چاره درمان ندید میگه دید که گیر افتاده گردافرید دید گیر افتاده هیچ راهی جز چاره عرض کردم که چاره در شاهنامه وعنی مکش و حیله میاد اینجا همینه مران را جز از چاره درمان ندید بدون روی بنمود و گفته دلیر میان دلیران و کردار شیر دلشکر نظاره بر این جنگ ماست بر این گرز و شمشیر و آهنگ ماست کنون من گشاده چون این روی و موی سپاه تو گردد پر از گفتگوی که با دختری او به دشت نبرد به دیمسان به عبرندر آورد گرد گفت پهلوان قویده است من اینجور سرم و اینا که موم گشاده است و همین میبینن لشگر تو فکر میکنم که یک ساعت این پهلوان داشته با دختری جنگ میکرده و این برای تو خوب نیست نهانی بسازیم بهتر بود یه جوری توافق کنیم با هم پنهان خرد داشتن کار مهتر بود بهر من از هر سو آهو مخواه میان دو صف برکشید سپاه آهو به معنی عیبه و بون کلمه ریشه کلمه هو هست به معنی خوب و اون آ حرف نفیه آهو یعنی ناخوب یعنی عیب میگه عیب منو طالب نباش اینجا در میون دو تا لشکر بهره من از هر سو آهو مخواه میانه دو صفت برکشیده سپاه کنون لشکر و دز به فرمان توست نباید گه آشتی جنگ جزد میگه لشگر و دز و همه در اختیار توست دیگه چه جنگی داری میکنی دز و گنج و دزبان سراسر تو راست چو آیی بران, چو آیی بران ساز دل که تواست میگه دز و لشگر و همه چی مال تو وقتی آمدی هر جوری میخوای اونجا رفتار کن چو رخسار بنمود سهراب راز خوشاب بکشات و ناب را یکی بوستان بود در به بهشت به بالای او سرف دهغان نکشت دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان تو گفتی همین بش گفت هر زمان سه گفتار او مبتلا شد دلش برف و کنج بلا شد دلش به دو گفت از این گفته اکنون مگرد که دیدی مرا روزگار نبرد اینجا اولا توجه دوستان را جلب میکنم به اینکه فردوسی در مورد وصف فردوسی در مورد وصف زیبایی ها هم بسیار قویدسته. استه و با اینکه چند کلمه در باره وصف دختران زیبا و معشوق و اینا نمیگه ولی به اندازه کافی رسا و زیبا هست مثل همینجا که میگوید که گردآفرید در ضمن این پیشنهاد صلحی که میداد که قدری اشوه هم در کار سهراب کرد شروح ساره بیان نوت سهراب راز خوشاب بگشاد اون ناب را اون ناب اشاره به لب و دهانشه خوشاب هم به عنی مورواری درخشانه که مقصود دندوناشه میگه لبخند زد و دندوناشو نشون داد یکی بوستان بود در اندر بهشت مثل یه باقی بود که درش به بهشت باز میشه به بالای او سرب گهگان نکشت دو چشمش گوزن و دو کمان تو گفتی همین بش گفت هر زمان مثل گلی که در منتهایش های شکفتگیش دیگه داشت هر لحظه شکفته می که چنین چیزی بود سهراب گرفتار شد ز گفتار او مبتلا شد دلش برفروخت و کنج بلا شد دلش سس شد به دو گفت از این گفته اکنون مگر میگه حالا حرفی که زدید دیگه از سرش بر نگردی که دیدی مرا روزگار نبرد بدین باره دز دلندر مبهند که این نیست بر طرز چرخ بلند به پای آفراد زخم گوپال من نراند کسی نیزه بر یال یا من میگوید که مواده به این دز و اینا و به این برج و باروی این قلعه خودتو خوش کنی این از چرخ بلند که بالاتر نیست من چرخ بلندم بری به زیر میارم من این دز رو زخم ضربه گرز من از پای در میاره و کسی نیزه بر یال من یال به معنی گردنه اصلا یال به معنی گردنه اینم که موی گردن اسب یا شیر رو میگویند یال برای این است که همون نزدیکی داره با گردن و الا اصلا یال به معنی گردن گرد آفرینم میگه خیلی خوب اینان را بپیشید گردافرید ثمند سرفراز بر دز کشید همی رفت و سهراب با او به هم بیامد به درگاه دز گشده هم در دز گردآفرید تن خسته و بسته در دز کشید گشده هم دم در بود و در دز رو باز کرد و گردافرید خودشو انداخت توی قلعه در دز ببستند و غمگین شدند پر از غم دل و دیده خونین شدن از آزار از آزار و هجیر پر از, از, جیر. پر از درد بودند برنا و پیر چونین گفت گجدم که شیرزن پر از غم بود از تو دل انجمن ما خیلی ناراحت بودیم وقتی که تو در روبروی سهراب بودی که هم رزم جستی هم افسون و رنگ نیاید زکار تو بر دوده ننگ دوده به معنی خانواده است اشاره به اجاق است که دود از او بلند میشه و هر خانواده یه دونه اجاق داشته کما در زبان در زبانهای دیگرم میگویند کانون خانوادگی دوده معنی خانواده است فراوان بخندید آفرید به باره برآمد آمد سپه بینگرید. آمد بالای برج سپه نگاه کرد سهراب هم اونجا مونده بود بیچاره چون سهراب را دید بر پشت زین چنین گفت که شاه ترکان و چین چرا رنگ جگشتی چنین چرا رنجه گشتی چنین بازگرد هم از آمدن هم زدشت نبرد بخندید و او را به افسوس گفت که ز ایران نیابند جفت افسوس اصلا به معنی مسخر است و حتی تا دوره حافظ هم به همین معنی به کار میرفته بعدها به معنی اظهار تعصب. اینجا میگه با مسخره خندید و او گفتش که ترکا هیچ وقت زن ایرونی پیدا نخواهند کرد. چون این بود و روزی از من میگه من نصیب تو نبودم از من نصیبی نداشتی بدین درد غمگین مکن خویشتن همانا بعد بعد میگه همانا که تو خود تورکان نیی که جز با بافرین بزرگان نیی بدان زور و آن بازوی و کتف و یال ندیدم تو را از بزرگان همال همال یعنی همسر و همتراز میگه هیشکی را از بزرگان نظیر تو ندیدم ولیکن میگه با اینکه بین نظیر هستی ولیکن چو آگاهی آید به شاه که آورد گردیز توران سپاه شهنشاه رستم به ز زجای،, زجای شما با تهمتن ندارید پای نماند یکی زنده از لشکرت ندانم چه آید زبد برسرد دری غایدم کین چنین یال و سفت همی از پلنگان به باید نهو تو را بهتر آید که فرمان کنی روح لشکرت سوی توران کنی نباشی بس ایمن به بازوگ خیش خورت گاو نادان ز پهلوگ خیش چو بشنید صحراب ننگ آمدش که آسان همین دز به چنگ آمدش به زیر دز... دزندر به زیر دزندر یکی جای بود کجا دز بدان جای بر پای بود به تاراژ دادان همه بوم و روست. یک بارگی دست بد را بشوست چون این گفت که امروز بیگاه گشت ز دست کوتاه گشت برارم به شبگیر از این باره برارم به شبگیر از این باره گرد ببینند آسیب روز نبر ظاهران اینجا سهراب منتظر بوده که گردآفرید بره و در رو باز کنه و اینا بیان تو و سهراب بیا تو به صورت فاتح و همه اینا اصحار اطاعت بکنن ولی میبینه که اینطور نشد و گردآفرید رفت و در و بست و مسخرهش کرد و گفت بهتر است که تو بری تو با رستم توانایی نداری سهراب بسیار خشمگین شد و اونجا نزدیک در دز یه مقداری بوم و رست روستاب اصطلاح بازار و ده و اینها بود بیرون قلعه اینا همه رو به تاراج داد و میگه به یک بارگی دست بعد رابشوش یعنی کاملا به کار بد دست زد این کسانی که هیچ اهل جنگ و ستیز نبودن اینا رو قاره کرد از خشمی که داشت اما اینجا یک ضرب المثل هست که من این رو باید توضیح بدم میفرماید که بهتر است که تو بری و فردوسی میگه نباشی بسیمن به بازوی خیش خرد و نادان س یه خیش این خر گاو نادان ز پهلوی چی؟ یعنی چیه میگه بهتر است که تو به قدرت و نیروی بدنیت متکی نباشی برای اینکه اگر به او تکیه بکنی چون با رستم تاب پایداری نداری کشته میشی و از بین میری مثل گاو نادان که از پهلوی خودش میکره این یکی از دو سه معنی رو داره یکی این است که اولا باید توجه بفرمند دوستان که گاو سیری نمیفهمه. و اگر او رو رها بکنن در میان الافسار که هرچه میخواد بخوره انقدر میخوره که معدش ورم میکنه و جا برای ریه و قلب و اینها تنگ میشه و بیم این هست که خفه بشه و میگویند که گاو ترکید و برای اینکه این کار نشه، برای جلوگیری از این کار، یک نقطه در بدن گاف هست که اگه اونجا ضربه کارت بزنن پوست رو و ازولات بین دنده رو سوراخ میکنه مستقیما وارد معده میشه یعنی سایر ام مثل کبد و کلیه و اینا رو آسیب نمیرسونه وقتی که معده گاف میکنه ناچار کسی رو میارن و اونجا با کارت میزنه و با فشار زیاد چون انا فشار درونی خیلی زیاده این علف اینا که خورده با فشار زیاد میاد بیرون حجم معده یه قدری کم میشه و گاف از مردن نجات پیدا میکنه یکی همین است که این زربر رو از پلوش میخوره برای اینکه نادانه و زیادی خورده یعنی کاری کرده که نباید بکنه یک مطلب دیگر عبارت از اینه که اینطور به نظر میاد که خب گاف باید پروار بشه تا باید ببرن قصداخونه بکشنشتی و نمیفهمه. و نمی که هر که وزن او زیادتر میشه و چاقتر میشه زود نزدیکتر میشه به کشته شدن بنابراین در کمال نادانی انقدر میخوره تا به حد علای چاقی برسه و موقع سربوریدنش بشه و ببرن از بین ببرنش و حال اینکه اگر در خوردن امساک میکرد و اگر عقل میداشت خودش رو ضعیف نشون میداد تا دیرتر کشته بشه این ظاهرا معنی اون ضرب مسئله که میگوید تو هم نباید به بازوی خودت و به قدرت خودت ایمن باشی برای اینکه اگر چنین باشه تو از بین خواهی هست بعد سهراب میگه که امروز که وقت گذشت چون این گفت که امروز بیگاه گشت، فیکارمون دست کوتاه گشت، برارم به شبگیر از این باره گرد ببینند آسیب روز نبرد. شبگیر به معنی صبح زوده، معنی سهرگاهانه. میگه خب امروز که وقت گذشت، ولی فردا صبح زود من این دز رو حسابشو میرسم تا ببینید که نبرد کردن با من چه عواقبی ممکن داشته باشه. ولی کسانی که در دز بودن تدبیر این کار رو کرده بودند و فکر خودشون رو کرده بودند که حالا بنده عرض میکنم کنم خدمت همون شب ای می نویسند برای کابوس چو سهراب برگشت گجده پیر بیاورد و به چاند مردی دبیر یکی نامه بهش نزدیک شاه برف کند پویند گردی به راه نخست آفرین کرد بر شهریار نمودانگهی گردش روزگار که آمد بر ما سپاهی گران همه رزمجویان و گنداوران سپهود یکی مرد پیشندرون که سالش دو هفته نباشد بزون به بالا سر و صحیح برتر است چون خورشید تابان به دو پیکر است برش چون بر پیل با فر و برز ندیدیم هرگز چنان دست و گرس. اینجا این دو هفته یعنی دو هفت چهار سال بیشتر نیست به بالاز سر به صحیح برتر است چه خورشید تابان به دو پیکر است، دو پیکر اسم یکی از این صورت‌های فلکی فلکیست، صورت فلکیست که اسم فارسیش جوزاست و یعنی اسم عربیش جوزاست و اسم فارسیش دو پیکره و علامتش یک زن و مرد برهنه است در آغوش همدیگر و این درست منطبق است با ماه تیر و ماه تیر ماه اوج آفتابه یعنی در نیمکره شمالی بلندترین روزهای سال از اول ماه تیر شروع میشه اولین ماه تیر اول تابستانه و بلندترین روز سال بنابراین خورشید در برج دوپیکر در بالاترین مقام خودش این است که میگه که سهراب به بالاز سرو صحیح برتر است قبلش از سرو صحیح بلندتره به بالاز سرو صحیح برتر است چون خورشید تاوان به دوپیکر است خورشید در برج دوپیکر برش چون بر پیل با فر و برس ندیدیم هرگز چنان دست و گرس چو شمشیر هندی به چنگ آیدش دریا و از کوه ننگایدش. چو آواز او رد قرنده نیست، چو چنگال او تیغ برنده نیست. حجیر دلاور میان را ببست، یکی بار... حجیر دلاور میان را ببست، یکی باره تیزک برنش است بشد پیش سهراب جنگاز مای، پاراسپاش ندیدیم چندان به پای که بر هم زنه دیدگان جنگجوی گرایت ز بینی سوی مغز بوی میگه وقتی که رفت برای جنگ او اینقدر ندیدیم این تاپ بیاره که آدم جنگجو چشم به هم بزنه یعنی در یک چشم به هم زدن گرفتار شد یا چشم به هم بزنه یا اینکه بو از بینی تا مغز برسه یعنی در طرفت العینی در یک لحظه حجیر گرفتار شد که سهراب از دوباره میخونم برای اینکه این به هم مربوطه بشد پیش سهراب جنگاز آزمای مای بر اسپش ندیدیم چندان به پای که بر هم زند دیدگان جنگ جوی گرایت اگر یعنی یا گرایت زبینی سوی مغز بوی که سهراب باش از پشت زین برگرفت برش مونده زن بازو اندر شگفت درست اصنو اکنون به زنهار اوست میگه تنش درست کشته نشده و در امان اوست پراندیشه جان از پی کار اوست سواران ترکان بسی دیدم انان پیچ از این گونه نشنیدم مبادا که او در میان دو سفت یکی مرد جنگ آور آرد به کف بران کوه بخشایش آورد زمین که او اسب تازد بر او روز روزکین اینا که در منتهای فصاحت و زیبایی است میگه اون کوه که صغر بر او اسب تازه زمین بر او بخش رحم میاره اگر دم زند شهریار اندرین نرانت سپاه و نسازد کمین پی مایه گیرد که خود زور هست نگیرد کسی دست او را به دست، از ایران همه فرهی رفته گیر جهان از سر تیغش آشفته گیر میگه اگر که شهریار دم بزنه در این کار یعنی یه خورده مهلت بده و اگر فورا سپاه و نرانه و کمی نسازه و فکر بکنه که خب درست میشه ما که زور داریم باش مقابله میکنیم از ایران همه فرهی رفته گیر اگر این طرشه ایران رو برباد رفته فرض کنید و فره ایزدی رو از او رفته بگیرید جهان از سر تیغش آشفته گیر اناندار چون او ندیده از کس تو گویی که سام سوار است و بس بونه اینه که امشب همه بر نهیم بونه اینه که امشب بونه اینا که امشب همه بر نهیم همی گوش را سوی لشکر نهیم اگر خود شکیبیم یک چند نیز نکوشیم و با او نگوییم تیز که این باره را نیست پایاب اوی درنگی شود شیر ازش تا به میگه ما امشب تمام بونه رو یعنی آزوغ وسایل وسائل ما همه رو بار میکنیم بر نهیم یعنی میذاریم روی عصب و حواسمون به طرف لشکر است. اگر یه مدتی هم ما چیزی نگیم و تندی نکنیم بازم باید لشکر برسه برای این دز طاقت او رو نداره و شیر از شتاب او برنگ میکنه چون نامه به مهرندر آمد به شب فرستاده برجست و نکش لب خیلی به سرعت همون شب نامه رو می نویسن. همون شب هم فرستاده نامه رو بر می و میره. به زیر دزندر یکی راه بود که از آن راه دشمن نا آگاه بود همون شب از آن راه دز هم برون شد همه دوده با او به هم و همه خاندان اینا از اون دز بیرون رفتن و خورشید برزد سر از تیر کوه میان را ببستند توران گروه سپهدار سهراب نیزه بده است یکی بار کشباری برنشست بیامد در دز بدیدند باز ندیدند در دز یکی جنگ ساز به شب رفته بودند با گجده هم سواران و گردان همه بیشکند بزن سو چون نامه به خسرو رسید دیگه اینا رو میگه چون نامه به خسرو رسید غمی شد دلشکان سخونها شنید گرانمایگان راز لشکر بخواند و داستان چند گونه براند. نشستند با شاه ایران به هم بزرگان لشکر همه بیش و کم چو توس و چو گودرز کشواد و گیف چو گرگین و فرهاد و بهرام نیو سپهدار یعنی پادشاه سپهدار نامه بر ایشان بخواند بپرسید هرگونه خیره بماند چونین گفت با پهلوانان راز که این کار گردد به ما بر دراز بدینسان که گژدهم گویت همی از اندیش دل را نشویت همی چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هم آورده این مرد کیست؟ جلسه مشورت پنهانی تشکیل میده و می نشینن با سردارانی که اسپورت و میگوید که این طوری که هم از این جوان از این سردار رو طورانی شهر میده این کار مثل این که دراز میشه بر ما و نظر شما در این مورد چیست؟ البته این جلسه پنهانیست میگه که به راز با اینا گفت برای اینکه اینا مسائلی نیست که درس بکنه بیرون و منتشر بشه و باعث به اصطلاح خراب شدن روحیه مردم و لشکر و اینها بشه این است که به راز اینا چیز میکنن مشورت بالاخره به اینجا میرسه که نامه‌ای بنویسن به رستم یعنی تشخیص میدن که رستم تنها هم آورد این سردار تورانی نیست و نامه‌ای بنویسن نامه فوبری به رستم و به دست گیو که داماد او پسر گودرز برجسته پسر گودرزه که بره به زاپولستان و در اسره وقت با سرعت تمام رستم رو بیاره که لشگر بکشن برن به طرف مرز توران نزدیک دژ سفید و با روبه روبرو بشن و بعد از این حوادثی در همین نام فرستادن این مسائل پیش میاد که بعدن باید از اون گفت که